سپاسگزارم که با رادیو البورس همراه هستید. خبرهای دانمارک در هفته که گذشت رو به سام شما می‌رسونم. دانمارک دهمین ده کشور جذاب برای مهاجرت. در یک گزارش جدید، دانمارک دهمین ده کشور جذاب برای مهاجرت شناخته شده. در این تحقیق، سوئد اول و کشورهای کانادا، سوئیس، استرالیا، آلمان نروژ، آمریکا، هلند، فنلاند و دانمارک های دوم تا دهم ده را به خود اختصاص دادند. حزب مردم دانمارک خواستار عوارض توریستی شد. از سال 2000 تا کنون استفاده از های دانمارک به میزان 70 درصد افزایش یافته است. حزب مردم دانمارک از دولت خواسته همانند برخی دیگر از کشورهای اروپا برای گردشکاران عوارض اتوبان از نماید. تا درآمد حاصل صرفه مرمت و باسازی های دانمارک شود مخالفان این طرح هزینه اجرایی را به مراتب بیشتر از درآمد احتمالی تخمیم میزنند و آن را بیفایده میپندارند اما حزب مردم دانمارک معتقد است با دریافت 150 و کرون برای دو هفته کمک بزرگی به خزانه ملی خواهد شد حزب مردم دانمارک میگوید برغه را ممنوع کنید در دادگاه حقوق بشر اروپا چند روز پیش دادگاه حقوق بشر اروپا منع پوشش برقه و نقاب در بلژیک را مورد تایید قرار داد. به دنبال این رأی دادگاه حزب دا رأی دادگاه حزب مردم دانمارک نیز خواستار اعمال چنین محدودیت هایی در دانمارک شدند. مارتین هانریکسن نخواست نخوا... سخنگوی همگرایی حزب مردم دانمای گفت لایه ای را که تقدیم پارلمان خواهد کرد که در صورت تصویر به پلیس اجازه می کسانی که در ملعه هم برغه یا نقاب پوشیده باشند را جریمه و یا حتی زندانی کند به گفت نقاب و برغه نشانه افراتی است و هدف این ممنوعیت کسانی است که معتقد در اسلام زنان باید از سر تا پای خود را بپوشند دانمارک میزبان کنفرانس ضد فساد سال آینده دانمارک میزبان بزرگترین کنفرانس ضد فساد تحت عنوان کنفرانس بین المللی ضد فشار در دنیا را به عهده خواهد داشت این کنفرانس که با همکاری شفافیت بین‌الملل و شورای کنفرانس بین المللی ضد فساد برگزار خواهد شد و بر نقش ضد فساد در جهان فساد در جهان و عوامل ضد آن بررسی خواهد شد حمایت مردم دانمارک از اتحادی اروپا سیاستمداران دوجنا از افزایش حمایت مردم دانمارک از اتحادیه اروپا استقبال کردند به اعتقاد برخی هرج و مرجی که در بریتانیا بعد از رأیگیری در آن کشور ایجاد شده در تصمیم دانمارکیا تاثیر شایانی داشته است یک خبر از اپل برنامه گسترش اپل در دانمارک شرکت اپل اعلام کرد که برنامه دارد علاوه بر پروژه خود در شهر ویبورگ با صرف 6 میلیارد کرون یک مرکز اطلاعات مشابه در شهر آپنا در نزدیک شهر در شهر احداث نماید فیسبوک نیست در ماه ژانویه اعلام کرد قصد دارد یک مرکز دادهها در دانمارک احداث نماید این ثبوت مرکز این شرکت در خارج از آمریکا خواهد بود مرکز جدید اپل در آبنا خدمات آنلاین مثل آی استور، اپل، آی مسیج، نقش برداری و از این نوع قبیل را به مشتریان خود در سر, سر اروپا ارائه خواهد کرد دلیل انتخاب دانمارک برای احتاس این تحسیصات شبکه مطمئناً برق توریدی از منابع تجدیدپذیر پذیر مثل انرژی بادی و بیومسه خواهد بود یک تاجر دانمارکی به جرم مخلوط کردن گوشت اسب با گوشت گاو و فروش آن در سوپرمارکت‌های بریتانیا در دادگاهی در این کشور حاضر شده. نیلسون 58 ساله و بیغ همدست 40 ساله 44 ساله وی به یک مورد مخلوط کردن گوشت اسب با گوشت چرخ کرده گاو و فروش آن برای استفاده در برگر و غذای آماده اعتراف کرده است. سفر نخست وزیر ژاپن به دانمارک شنزو اابه نخست وزیر ژاپن در یک سفر کوتاه به اسکاندیناوی وارد دانمارک شد با توجه به توافق تجاری بین اتحاد اروپا و ژاپن که هفته گذشته به امضا رسید به نظر میرسد که نخست وزیر ژاپن در سفر به دانمارک سوئد فلان وقتی وقت زیادی را به مسائل تجاری اختصاص ندهد در عوض وی مایل است در رفع سه مشکل عمده ژاپن یعنی رشد پایین جمعیت رشد پایین جمعیت جمعیت رو به پیری و نابرابری جنسیتی از کشورهای اسکاندیناوی الگو برداری نماید. دونات ترامپ را دوست ندارند. در یک تحقیق جدید از کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه، دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ، اکثر مردم این کشورها نسبت به رایت آمریکا دیدگاه منفی داشتن تا مثبت. اما این دیدگاه منفی در مارک بیش از سایر کشورها و در حدود 88 درصد گزارش شده است. در این نظرسنجی میزان دیدگاه منفی از پوتین رای جمهور روسیه با اندکی تفاوت با دونالد ترامپ 86 درصد بوده است. کمک 10 میلیون دلاری دانمارک به ابتکار مالی کارآفرینان زن. دانمارک مبلغ 69 میلیون کرون به ابتکار مالی کارآفرینان زن در کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد. این ابتکار که تحت تصیلات بانک جهانی اعمال خواهد شد از حمایت دختر ترامپ رئیس جمهور آمریكا نیز برخوردار میباشد نام نامهای دختران و پسران دانمارکی در سال گذشته نتایج یک بررسی از سوی سازمان ارقام آمار دانمارک نشان میدهد زاقه خانواده‌های دانمارکی در نامگذاری فرزندان پسر و دختر تغییر چشمگیری داشته و در سال گذشته یک هزار نوزاد که متولد شدند تعدادی از این نوزادان از نامهای ایما و ویلیام نامیده میده شدند و این اسمها پرطرفدارترین در میان شرفندان دانمارکیز با خود خبر محکومیت شرفند سوری به جرم برنام ریزی برای حمله به کپنهاگ دادگاهی در آلمان یک پناهجوی 21 ساله اهل سوریه را به جرم ریزی برای یک حمله تروریستی در کپنهاگ به 6 سال زندان حبس محکوم کرده. این فرد در نوامبر سال 2016 با برخی لوازم ساخت بمب در مرز آلمان و دانمارک دستگیر شد. این جوان که قبلا به هم دستی با دایش اطراف کرده بود در دادگاه متعیش, متعیش شد که به این معمول دایش بوده تا چمدانی را در دیسکایق مرکزی قطار کوپنایک به فرد دیگری تحویل دهد و قصد بومگذاری نداشت در این دادگاه مشخص شد وی در سال 2015 به آلمان آمده و در این مدت با افرادگرایان در ارتباط بوده است تندرستیتون پایی پایدار عزیزان روز و روزگارتون خوش